باب چهارون در فواید خاموشی حکایت یکی را از دوستان گفتم امتناع سخن گفتنم به علت آن اختیار آمده است در قالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمی آید. گفت دشمن آن به که نیکی نبیند. و اخل عداوت لا یمر رو به صالحن، الا و یلمزهو به کذابن، عشیر، هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است، گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است، نور گیتی فروز چشمه هور، زشت باشد به چشم موشک کو.